سلام بر همه شما مخاطبان کانال هزار افسان جایی که قصه های کوهن و افسانه های پر رمز و راز جان می گیرند. امروز قسمت دوم ریحان خانم رو براتون روایت می کنیم داستانی زیبا و جذاب پس تا انتهای داستان همراه ما باشید در قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که ریحان خانوم بعد از به زندان افتادن شوهرش و از دست دادن فرزند دلبندش دچار دو دوچار قم و زیادی شد. بعد هم کم کم در دنونش فکر انتقام مثل یک قنچه شکوفه زد. و چون خیلی شجاع و قوی هم بود لباس رزم پوشید و به داروقه و سپاهیان شاه اصد شبیه خون زد. و کم کمم دار و دستهای قوی همه اطرافش رو گرفتند. تا جایی که شاه اسد دچار نگرانی و ترس شد و از وزیرش خواست که فکر چاره ای کنه و این دشمن نامری ای رو پیدا کنه و از بین ببره. وزیر هم سراغ دوست تاجرش رفت و اونم قول داد که حتما این دشمن رو پیدا میکنه و اینک ادامه ماجرا و اما تاجر هیلهگر مقداری لوازم بار قاطر خودش کرد و راه ساحل رو در پیش گرفت وقتی به نزدیک قلعه رسید نگهبان ها اونو دستگیر کردند و پیش ریحان خانوم بردند ریحان خانوم از اون پرسید کیستی؟ از کجا اومدی و به کجا میری؟ تاجر داد دوره گردم از مملکت اسدشاه اومدم و برای خرید و فروش به همه جا میرم. ریحان خانم پرسید اصد شاه چه میکنه؟ در تدارک ترمیم و آماده سازی قشونش هست یا نه؟ تاجر موزیانه خودش رو به ناراحتی زد و رندانه پاسخ داد: شاهزاده خانم، خدا کمر این اسدشاه ستمگر رو بشکنه که هیچکی از ظلمش در امان نیست. فریاد مردم از بیدادگری اون به عرش اعلا رسیده، اما خوشبختانه به تازگی دشمن باشهامتی پیدا کرده که پیر و جوان به قشونش میپیوندند ریحان خانم که در ضمن رشادت و شجاعت دارای سادگی و صداقت هم بود، تحت تحذیر لحن ریاکارانی تاجر بدجنس قرار گرفت و گفت دشمن اصدشاه که زندگیش رو تیره و تار کرده من و افرادم هستیم. و بعد هم به افرادش گفت از تاجر به خوبی پذیرایی کنند و به او عزت و احترام بذارند. اونها هم اینقدر بهش احترام گذاشتند و خوبی کردند که تمام عمرش کسی اونقدر بهش احترام نذاشته بود. تاجر سه روز اونجا موند و نوم و نمک اونها رو خورد و در پایان روز سوم پیش وزیر رفت و نمکدان شکست و به اون خبر داد خانه ات خراب کسی که با اسدشاه میجنگه و اون رو به روز سیاه نشونده کسی جز یک دختر جوان و زیبا نیست وزیر خوشحال و خندان به حضور شاه رفت و با مسرت به اون گفت قبل یه عالم خواسته شما رو اجابت کردم و فهمیدم کسی که جرأت کرده و به قشون شما حمله کرده دختر جوان و زیبایی است که در قلعه سکونت میکنه و همه ساحل دریا رو قرارگاه سپاه خودش ساخته اصد با شنیدن سخنان وزیر از تعجب چشمهاش گشاد شد و بی اختیار از جا جهید و فریاد زد. وزیر مگه چنین چیزی ممکنه خاک بر سر قشون و سرکردگان قشون ما که این چنین در پنجه دختر گرفتار و اسیر شدند. به جبه پادشاهی و تاج و تخت سلطنتی که از نیاکانم به ارس بردم قسم میخورم. که اونقدر قشون به ساحل دریا بفرستم که خاک اونجا رو به توبره بکشن. وزیر قیافه دانشمندانهی به خود گرفت و با لحن پنداموزانهی گفت پادشاه ها اگر دشمن به اندازه مگسی هم باشه باید اون رو فیل عظیم و پنداش و به قول اون زربلمسل معروف پارسی دشمن را نتوان حقیر و بیچاره شمرد شاه اصبانی شد و فریاد زد وزیر فال بد نزن چه فیلی تو از یک زن جوان هم فیل عظیم و جسه میسازی آن فرمان حمله را شخصا صادر کرد و سپاهیان او سیلاسا روانه ساحل دریا شدند شاه خودش هم در پیشاپیش سپاه حرکت میکرد و وقتی به نزدیکی ساحل رسیدن شاه دستور داد چادر بزنند و اون وقت پیکی نزد ریحان خانوم فرستاد تا به اون بگه که تسلیم بشه و از شاه امان نامه بگیره ریحان خانوم توسط همون پیک پیغام فرستاد که علاقی که به جل پوست و دیگری در بیاد دوم و گوشش را میبارند. من عروس تو ریحان هستم. آرزو داشتم که روزی باهات هات رو به رو بشم و الانم به آرزوی خودم ریسیدم و میخوام که ازت انتقام بگیرم. عزد شاه به محض شنیدن نام ریحان خانم رعشه بر اندامش افتاد و فریاد زد تبل جنگ را بنوازید. سپاهیان تحت فرماندهی اصد شاه با شنیدن صدای تبل جنگ مثل سیل خروشانی به میدان جنگ رفتند. از اون طرف هم ریحان خانم با گروهی از لشکر خودش به قشون شاه هجوم بردند. سه روز و سه شب نبرد بی امان و پیکار تن به تن ادامه داشت و سرانجام افراد ریحان خانم قشون اصد شاه رو شکست دادند. ادهی رو به حلاکت رسوندن، تعدادی رو زخمی و مجروح کردند و گروهی اسیر شدند و زیرکترین و ترینشون هم از محلک گریختند اسدشاه از از هم خودش با چند تا از افسران و اطرافیانش در گرماگرم گرم جنگ اوزار و خطرناک دیدند فرار رو برقرار ترجیح دادند و به قصر خودشون برگشتند از چا بعد از اون وزیر رو نزد خودش فرا خوند و گفت وزیر این دختره ریحان خانم حسابی پدر ما رو در آورد اگه همون موقع که مراد رو دستگیر کردیم دستور داده بودیم که اون رو هم بکشن حالا این همه بلا سرمون نمیومد این دختر جگر منو سزوند و آبروی منو برباد داد وزیر گفت پادشاه ها آرام باشید گذشته ها که گذشته کمی صبور باشید دیر یا زود لشکر ریحان خانم تارمار میشه خودش هم در پیشگاه شما به جلاد سپرده میشه و درس عبرتی میشه برای آیندگان پادشاه وزیر و اطرافیانش اینجا با خیالات خود سرگرم باشند و به فکر تحییه تدارک قشون و سلاح و آزوقه باشند تا ببینیم کودکی رو که چوپان در گورستان از جلاد گرفت یعنی زمان پسر ریحان خانم که حالا بزرگ شده در چه حالی زمان بزرگ شده بود و در سن 15 سالگی جوانی رشید قوی هیکل جنگجو و دانا بود البته اونم با وکیل و وزیر و اعیان و اشراف میانه ی خوبی نداشت و بهشون توجه نمیکرد. کرد. ایان و اشراف هم شکایت اونو پیش شاه کردن و او به اون جوان مشکوک شد. و اصد ماموری به دنبال چوپان فرستاد و زمانی که چوپان دست به سینه در برابر شاه ایستاده بود شاه به اون گفت بگو بدونم زمان کیه؟ به جبههم قسم اگر اگه راستش رو نگی دستور میدم که به دار زند. چوپان که فکر کرده بود شاه رازش رو میدونه به همین خاطر تمام ماجرایی رو که 15 سال پیش اتفاق افتاده بود برای شاه بازگو کرد و شاه به لا فاصله دست دور دستگیری و حکم قتل اون رو صادر کرد جلادان برای دستگیری زمان روانه شدند اما وزیر خردمند و دانای شاه پنهانی خودش رو به زمان رسوند و به اون گفت شاه حکم قتلت رو صادر کرده اجله کن و هر چه زودتر از اینجا دور شو زمان هم از وزیر تشکر کرد و از خونه خارج شد و خودش رو از مهلک رهایی از سوی دیگه ماموران شاه خودشون رو به خونه زمان رسوندن هر چه جو سجو کردن اون رو پیدا نکردند که نکردند و وقتی که اسدشاه متوجه ناپدید شدن زمان شد بسیار عصبانی تر شد و گفت که معموران همه جای شهر و اطراف رو جستجو کنند و اون رو پیدا کنند اما فایده ای نداشت انگار که زمان قطره آبی شده بود و به زمین فرو رفته بود پادشاه ستمگر و کینتوس هم که خودش را چنین ناتوان دیده بود جلادی رو که سالها پیش از دستورش سرپیچی کرده بود و نوزاد رو نکشته بود همراه پسرش به بارگاه خودش آورد. و بعد هم دستور داد بی رحمانه پسر جلاد رو جلوی پدر به قتل رسوندند عصد با پر روی تمام به جلاد گفت آیا جیگرت سوخت؟ این سزای کسیه که دستور ولی نعمت خودش رو اجرا نکنه. جلاد با وجودی که دچار درد و رنج و علم زیادی شده بود به روی خودش نیاورد و در برابر پادشاه ظالم عجز و ناتوانی خودش رو نشون نداد. اکنون ببینیم زمان که به توصیه ی وزیر از خونه خارج شده بود به کجا رفت و چه روزگاری داشت. زمان مثل گرگی تنها به تنهایی و به طور ناشناس به شهر میوممد و اعیان و اشراف رو که سر راه خودش میدید از پای در میآورد اما با شاه و اطرافیانش کاری نداشت. شبها هم مخفیانه به خونه یه جلات میرفت و تمام خبرها رو از اون می گرفت. از اون طرف ریحان خانم هم روزگار شاه رو سیاه کرده بود و هر روز به شهر حمله می و اعیان و اشراف و پولدارها رو به حلاکت می و اموالشون رو به غنیمت می بود. البته ریحان خانم چیزهایی در مورد زمان هم شنیده بود و آرزو داشت که با اون دیداری داشته باشه ولی نمی دونست که اون پسر خودش و فکر می کرد که فرزندش زمانی که نوزاد بود و جلاد اونو از گهواره بیرون برد، کشته شده. زمان هم آوازه شجاعت و دلاوری ریحان خانم رو شنیده بود و دلش میخواست اون رو ببینه. و اما روزی زمان با لباس درویشی به خونه ی جلاد رفت و جلاد تمام شکنجه ها و عذابی رو که از سفشاه بر سر اون آورده بود و فرزندش رو به طرز فجیعی کشته بود برای زمان همه رو نقل کرد. زمان از شنیدن اون ماجراهای عذاباور و اون اونقدر اندوهگین شد که بی اختیار سید اشک از چشاش جاری شد. جلاد گفت ببخش که ناراحتت کردم و زمان بعد از اون که تونست بر اعصاب خودش مسلط بشه، پس پدر بی نوا و مادر من چه شدند؟ جلاد پاسخ داد پدرت که در زندان اصدشان اسیر و گرفتاره مادرتم از اینجا رفته و هیچکی نمیدونه اون کجاست و یا حتی زنده است یا مرده با شنیدن این خبر خون در رکهای زمان به جوش اومد و گفت اگر ریش این پادشاه ظالم رو به خونش آغشته نکنم پسر پدرم نیستم پدرم در کنج زندان عذاب بکشه و من اینجا راحت باشم؟ این از محالاته. جلاد گفت زمان با شتاب و از روی خشم دست به کاری نزن که ممکنه اوضا بدتر بشه. کمی تعمل کن. اسدشاه وزیر با تدبیری داره که او هم از ظلم و ستم شاه نسبت به مردم به ستوح اومده. بزار با اون مشورت کنم، تا ببینم که نظر اون چیه زمان گفت پس در این صورت چاهکنی رو هم خبر کن تا من هم در موردی با اون مشورت کنم جلاد تعجب کرد، اما چیزی نپرسید و چاهکنی رو که در همسایگیشون بود صدا کرد و اون رو پیش زمان آورد و خودش هم به دنبال کارهاش رفت زمان با چاهکن از هر دری سخن گفت و تا اینکه سرانجام به اصل مطلب پرداخت و به اون گفت ای چاهکن اگه بتونی از اینجا نقبی حفر کنی که از زیر امارت سلطنتی بگذره و درست به زیر اتاق شخص شاه برسه صد سکه یه طلا به تو خواهم داد چاهکن با شنیدن صد سکه یه طلا چشاش از تعجب باز شد و گفت طوری نقب بزنم که کیف اما اصر همان روز یکی از پسران اسدشاه شاه به نام کریم که مادرش هم شاهزاده بود به جای پدر بر تحت سلطنت نشست و تاج پادشاهی بر سر گذاشت. کریم تازه به دوران رسیده بود و پایه های حکومتش را بر استبداد و زور و ستم بنا کرد و چنان ظالمی شد که به قول معروف دست پدر را از پشت بسته بود. از طرف دیگه زمان بعد از اینکه به سوگندی که یاد کرده بود وفا کرد و ریش شاه رو به خون آغشته کرد به سمت زندان رفت اما هر کاری کرد نتونست به تنهایی دیوارهای زندان رو خراب کنه و پدرش و بقیه زندانی های بیگناه رو آزاد کنه. تصمیم گرفت پیش ریهن خانم بره و به کمک او و یارانش کارهای ناتمام رو تمام کنه. پرسان پرسان به محل اقامت ریحان خانم رفت و به او خبر داد اصدشاه رو کشتم و پیش تو اومدم. ریحان خانم که از به هلاکت رسیدن اصدشاه خیلی خوشحال و مسرور بود دست زمان رو بوسید و گفت ای جوان دلاور و شجاع تو دشمن اصلی من رو کشتی. اکنون فرماندهی این سپاه بزرگ رو به تو زمان از ریهان تشکر کرد و گفت پس از اینکه دنیا رو از لوس وجود ستمکار از پاک کردم کریم به جای او بر تخت سلطنت نشست و پادشاهی شد ظالمتر از پدر خبیسش. حالا به اینجا اومدم تا به کمک هم اون رو هم از بین ببریم و بساط ظلم و ستم رو برچینیم. اینا اینجا در فکر تهیه و تدارک قشون و آماده شدن برای پیکار با کریمشاه باشند تا ما به سراغ وزیر و جلاد برویم زمان پرسید چند روز طول میکشه تا نقب آماده بشه چاهکن پاسخ داد اگه زیاد طول بکشه هفت روز چاهکن همون روز مشغول کار شد و بعد از شش روز نقب را رو به زیر اتاق شاه رسوند و تمام شدن کار رو به زمان خبر داد. زمان سکه های طلا رو به چاهکن داد و چاهکن خوشحال و خندان خداحافظی کرد و رفت و زمان به انتظار نیمه شب لحظه شماری می کرد. نیمه شب که شاه اسد در خواب عمیقی در میان رخت خواب پرقو بود، زمان به درون نقب رفت و بعد از مدت کوتاهی خودش رو بر بالین شاه رسوند و صدای خورخور اونا شنید شمشیرش رو از غلاف کشید و جان شیرین پادشاه رو از او گرفت و گفت شاه بابا خورخور کن کابوس صهمگینی که سالها تو رو آزار میداد به حقیقت پیوست زمان اتاق خواب شاه رو ترک کرد و در گوشهای پنهان شد سپید دمان فراشها و کنیزها و قلام ها و کارکنان و درباریان و همه افراد وابسته به شاه به تدریج از خواب بیدار شدند و به کارهای خودشون رسیدند صبحانه آماده کردند و منتظر قدمهای مبارک پادشاه شدند اما از شاه خبری نشد وزرا در دیوانخانه به انتظار نشستند اما بازم هم شاه نیمد. هیچ کس هم جرعت نداشت به اتاق خواب شاه سرکشی کنه تا بفهمه چه به روزش اومده. دیگه روز به نیمه رسیده بود که وزیر به خودش جرأت داد و به پشت در اتاق خواب شاه رفت. زربه ای به در نواخت و کمی منتظر شد. چون صدایی نیمد دوباره چند ضربه به در زد. بازم هم پسخی نشنید. این بار همراه با ضربه‌های شدیدی که به در میزد پادشاه رو هم صدا میزد. اما از اون سمت هیچ صدایی در نمی‌اومد. سرانجام در رو شکستند و وارد اتاق شدند و پیکر پادشاه را غرق در خون یافتند. اونهایی که این صحنه رو دیدن شیون کنان و فریاد زنان از اتاق خارج شدند و صدای اونها بقیه درباریان رو هم جمع کرد. و همه جسد اصد شاه رو دیدند و اون رو از داخل اتاق بیرون کشیدند و البته نامه ای رو هم دیدند که زمان اون نامه رو نوشته بود و اونجا گذاشته بود و نوشته بود من اصد شاه را کشتم. بعد از کشته شدن اسدشاه حالت غم و شادی هر دو به اسدشاه دست داده بود اون به خاطر کشته شدن اسدشاه خوشحال بود چرا که انتقامش گرفته شده بود و به خاطر روی کار اومدن کریم خان یعنی پادشاه خونخوارتر ناراحت و غمگین بود روزی افسرده و غمگین در کنج خونه نشسته بود که وزیر وارد خونش شد و به اون گفت کریم دستور بازداشت و حکم قتل تو رو صادر کرده و اگه مبازب نباشی به زودی دستگیر رو اعدام میشی جلاد حراسان و سراسیمه به دست و پای وزیر افتاد و پرسید حالا من چیکار کنم وزیر دست جلاد رو گرفت و اون رو از روی پاهای خودش بلند کرد و گفت روی پای من افتادن دردی رو دوا نمیکنه برخیز خودت رو آماده کن تا شب هنگام هر دو اینجا رو ترک کنیم و پیش ریحان خانم بریم برای رهایی از مرگ لازمه که پیش اون بریم جلاد اشیای گرانبهای سبک وزن خودش رو برداشت و شبانه همراه وزیر خانه و کاشانه رو ترک کردند و به سمت قلعه محل اقامت ریحان خانم رفتند زمان از اینکه دوستانش به سلامت از جنگ کریمشاه گریخته و به اونها پیوسته بودن، خوشحال شد و اونها رو به ریحان خانوم معرفی کرد. ریحان خانوم به مناسبت ورود اونها شبانه مجلس جشنی ترتیب داد. وزیر در این مجلس گفت هر کسی یه داستانی از داستانهای جالب زندگی خودش رو تعریف کنه. و هر کدوم به ترتیب خاطره جالب یا حادثهای رو که براشون پیش اومده بود تعریف کرد در میان این گفت و خانم پسرش رو شناخت و اونو در آغوش کشید مادر و فرزند پس از سالها دوری در آغوش همدیگه اشک شادی ریختند ریحان خانوم از وزیر و جلال تشکر زیادی کرد و به خاطر پیدا کردن فرزندش چهل شبانه روز جشن گرفتند و شادی کردند و از شدت شادمانی و شعف قشون و میدان نبرد را به باد فراموشی سپردند درست در همین هنگام قشون کریمشان حمله سختی رو به سپاه ریحان خانوم، آغاز کردند و تلفات زیادی به اونها وارد کردند. ریحان خانوم با ای از افرادش تونست از محلکه فرار کنه و جان خودش و تعدادی از افرادش رو نجات بده. ریحان خانوم و افرادش در مدت کوتاهی دوباره سپاه بزرگی تشکیل دادند و این بار فرماندهی سپاه به عهده زمان سپرده شد. زمان در پیشاپیش سپا فرمان حمله را صادر کرد و نیمه شب به دشمن شبیخون زدند و بشون کریمشاه را تار مار کردند و کریمشاه با تعداد کمی از افرادش از میدان نبرد فرار کردند و تونستند وارد شهر بشند. ریحان خانم متوجه اشتباه خودش شده بود و با خود گفت احتیاط کردن شرط لازم و ضروری برای هر انسان عاقل و به ویژه هر فرمانده با تدبیره. ریحان خانم از شکست ها پند آموخته بود و برای جبران شکست ها و کسب پیروزی آمادگی لازم رو به دست آورده بود. سپاه انبوهی از افراد شجاع و جسور تشکیل داد که به سه گروه تقسیم شدن. فرماندهی یک گروه به زمان سپرده شده بود و فرماندهی گروه دیگه به عهده وزیر و فرماندهی گروه سوم را هم یکی از افراد شایسته و مورد اطمینان بر عهده گرفت ریحان خانم به عنوان هماهنگ کننده و فرمانده کل دستور داد که از سه طرف به شهر یورش ببرند زمان شتابان خودش رو به سپاه دشمن زد و با افراد از کشته های دشمن پشته ها ساخت. اما انگار آدم های این سپاه رو پایانی نبود. اونقدر از هر طرف به دشمن حمله برد و اونقدر شمشیر زد که نیرو و توانش رو به ضعف و سستی گذاشت و دستاش از کار افتاد. چند جای بدنش زخمی شده بود و بیهوش از اسب بر زمین افتاد شب همون روز مادرش خواب دید سیل خروشانی زمان رو به کام خودش کشیده و شتابان میبره. حراسان از خواب پریده و بر اسب سوار شد و به سمتی که پسرش رو فرستاده بود روانه شد و به سرعت باد اسب تا. دو سه نفر از افراد قشون زمان رو دید و با چشمهای گریان حال زمان رو از اونها پرسید و گفت زود بگویید ببینم بر سر زمان چه آمده. یکی از افراد در حالی که به شدت گریه می کرد پاسخ داد قشونمون رو و مار کردند و زمان رو هم کشتند. ریهان خانم فریادی کشید و از اسب به زمین افتاد و چند ساعتی بیهوش بود. سرانجام بعد از تلاش زیاد اون رو به هوش آوردند و ریحان خانم سر وضع آشفته خودش رو مرتب کرد و شمشیر از نیام کشید و گفت قسم میخورم که انتقام سختی از این دشمن نابکار بگیرم میگم داغ فرزند سخت و مهلکه خبر داغ جانخراش جگر مادر رو به درد آورده بود و لحیب آتش انتقام رو در وجودش پر کرده بود در همین هنگام هم نامه از زوی کریمشاه خطاب به ریحان خانم رسید کریمشاه در نامه نوشته بود ای حکم بزرگ عاقلانه بیاندیش و جنگ و خونریزی رو که باعث به هلاکت رسیدن آدم میشه کنار بذار و با من ازدواج کن ما با هم سرزمین واحدی درست میکنیم و تو شهبانوی من خواهی بود و تا واپسین دم زندگی با عشق و علاقه با هم زندگی خواهیم کرد لبخند تمسخرآمیزی که از کینه امیق حکایت داشت بر لبان ریحان خانم نقش بست و با جمله کوتاه که به همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد پاسخ نامه رو دام. کریمشاه بعد از خوندن پاسخ نامه خیلی عصبانی شد و دستور داد که شیپور جنگ رو بنوازند و خودش هم در پیشا پیش سپاه راه ساحل دریا رو در پیش گرفت. با نزدیک شدن سپاهیان کریمشاه به ساحل، ریحان خانم دستور اقب نشینی موقتی رو صادر کرد و کریمشاه متوجه این ترفند نظامی شد و قشون خودش رو به چندین گروه تقسیم کرد و اونها رو به همه اطراف فرستان و به فرماندهانش هم دستور داد که هر کدوم ریحان خانم رو دیدن زنده دستگیر کنند جنگ بیرحمان شروع شده بود و ریحان خانوم هم فرمان حمله نهایی رو صادر کرد و بالاخره جنگ تا شب ادامه پیدا کرد و, و در انتها این ریحان خانوم بود که قشون کریم شاه رو شکست داد و کریم شاه و فرماندهان و افسرانش رو دستگیر کرد در نخستین صبح پیروزی خانم از فرماندهان خودش چشمش به پسرش افتاد و ناباورانه فریاد زد پسرم تویی مادر و فرزند هر دو بازوها رو گشودند و یکدیگر رو در آغوش گرفتند خانم گفت افرادت به من گفته بودند که سپاهیان کریمشاه تو رو کشتند و زمان گفت اونا درست گفته بودند من زخم‌های مهلک و کشنده‌ای بر پیکرم وارد شده بود اما دوستام در آخرین لحظات زندگی منو پیدا کردند و از مرگ حتمی نجات دادند تمام افراد قشون ریحان خانم از اینکه زمان رو زنده میدیدن خوشحال و شادمان شده بودند بعد از اون همگی به شهر رفتند و ریحان خانم به محض ورود به شهر دستور داد قبل از هر کاری درهای زندان رو باز کردند و دیوارهای اون رو ویران کردند. مراد بعد از تحمل سالها شکنجه و عذاب و دوری سرانجام از زندان رهایی پیدا کرد و در آغوش خانواده که شادی ریخت. ریحان خانم فرزندشون رو هم به اون معرفی کرد و خوشحالی اونها چندین برابر شد. و اما ریحان خانم بزرگان شهر رو فرا خوند و در میان اونها وزیر خردمند و با تدبیر رو پادشاه کرد و جلاد رو که البته ها بود دیگه نه تنها جلاد نبود بلکه از همکاران نزدیک و وزیران و یاران و وفادار ریحان خانم بود، به وزیری برگزید و دستور داد مجلس جشن شادی و باشکوهی و برپا کنند و البته که خود کریم شاه و تمام اعیان و اشراف و کسانی که نوکر حلقه به گوش او بودند رو هم به سزای اعمالشون رسانید و از بین بود. و از اون زمان ریحان خانم در کنار همسر و فرزندش تادم مرگ به دور از کینه و دشمنی زندگی کردند با این امید که شما هم همواره در کمال آرامش و خوشبختی زندگی کنید امید که از این داستان لذت و بهره کافی برده باشید ممنون که تا پایان داستان با ما بودید در پناه عشق و نور الهی باشید